السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد علي الطيبين الطاهرين المأثومين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأرابين. أسيكم بنفسي متقبل الله. اللهم كل بلجك الحجة ابن الحسن. صاباتک عليه و علی آبائه بی آده الساعة و فی کل ساعة و حافظا و قائدا مناصرا و دلیلا معینا حتی تسکنه ارغک طوعا و تمتعه فیها طبیلا شماع عزت و ضعیف خودم را به تقوای الهی سفارش میکنم مراقب باشیم حدود رو مراعات کنیم باور کنیم چما در محضر خدا هستیم و اگر خدای نچرده قبلتی شردیم گناهی مرتکب شدیم از کنیم پربرگاراب انا بد تننا الص العليك من ماكم تو وواجه ك به من قلت صحيياي من نظرك وطلب العفو من كذاف و نات الكج خدا یا من بنده ادبی هستم. اون زمان که من مواجه و روبروی تو بودم، مخالفت فرمان تو رو کردم چه ادبی و بی احترامی از این بالاتر خدایه تو بزرگواری و یکی از مسادق روشن بزرگواری افوه است خدایه از تو درخواست میکنم مرا عفو کنی مرا رو ببخشی و این ادبی ها را هر بردگاه را اغماز کنیم ولادت حضرت هادی صلوات الله و سلامه و علیه را که بر ما گذشت و اید بزرگ و اید یاران قادر ایدی که جامعه جمعی خیرات و برکات است اید سعید قدیر را به همه شما عزه که در آستانه این اید هستیم تبریج عرض می کنم اگر بخواهیم عظمت قدیر را درش کنیم کافیست به آیاتی که در این زمین نازل شده است توجه کنیم در یک جا خدای متعاد می فرمات بدلغ ما انزل ایلکم ربک ای پیغمبر ما ای رسول و فرستاده ما برای هدایت بشر این فرمان رو اجرا کن از مردم هم نترس و اگر اجرا نکنی گویا رسالت را انجام ندادی گویا کاری نکردی و فرمانی رو امتصال نکردی و لم تفعل فما بلغت رسالته عظمت قدیر اینجا روشن میگردد اگر این ابلاغ صورت نجیرد و یا هیچ کاری پیغمبر نچرده است جای دیگری می فرماد که اکمل اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رویت لکم الاسلام دینه اینکه علی ابن عوی به عنوان وسیع و جانشین تو به جامعه بشریت معرفی شد دین به کامل شد یعنی این ولایت وقتی آمد در متن فرمانه ها این قدر قدرتمنده است که دین را کامل می کند سخن بزرگی است اکملت ولکم دینکم دیگه هیچ این دین چام بود نداره و اتمنتو علیکم نعمتی با این موعدی من نعمتام رو بر شما تمام چردم نعمت رو تمام چردم یعنی دیگه هیچ نعمتی نیست که نصیب شما نشده باشد نعم الهی به طور کامل نصیب شما شد نعمت خدا تمام شد و علی ابن عبی به عنوان وسیع جانشین معرفی شد و رضی تولکم الاسلام الدین آم چین ولایت رو شما به وجود آوردید و به دست آوردید باید بدانید که این دین مورد رضای من است اگر ولایت از متن دین خارج گردد هر قدر فرد عبادت کند و نماز بخواند و روزه بگیرد و عبادت کند و عشق بریزد این اسلام را خدا نمی پذیرد اون زمان اسلام انسان مطرح است و مقبول است که با ولایت هم راه باشد و دا مهم این است که الان بعد از رهرت علی ابن عبی طالب ولایت چجور تحقق پیدا می کند در فرزندش امام مجتبی سبس حضرت سید الشهدا و طور به ترتیب تا می به حکومت حضرت مهدی سلامات الله و سلام امروز در غیبت امام زمان ولایت حضرت بقیه الله این نقش رو دارد که گفتیم که دین رو کامل میکند کند نعمت رو تمام می کند اسلام ما را خدا میپسندد و حالا که امام مهدی صلوات الله علیه غائب است چی؟ برای تحقق بلایت باید دست به دامن چی بزنیم؟ حضرت غائب و پنهان است از دیدها اینجا که مساله بلایت فقیه چهره خود را نشون می دهد. اون مجتهدی و اون آدمی که علماء وقتی جمع شدند خردمندان، دانشمندان، بزرگان همه جمع شدند که تکلیف چی هست اگر بخواهیم به بلایت عمل کنیم چه باید بکنیم می نشینند به عنوان خبرگان کشور. برنامه ریزی میکنند بررسی میکنند شناخت به وجود میاد و بهترین رو انتخاب میکنند برای بلایت که به همد الله خبرگان در این زمین موفق شد هم در زمان امام و هم امروز و امروز بلایت ولی فقیه مسلمین حضرت آیت الله العظمه امام خامنه ایست <تصال> که تمسک به این بزرگوار و به تمسک به بلایت امیر است تمسک به بلایت رسول الله است که در این زمینه و با اهمیتش باز قرآن میگوید الیوما یا ایساللادینا کفارو من دین کم، اینا رو به دست آوردید، این تماسک رو پیدا چردید و به این ولی چنگ زدید و مهچام پیرابی چردید، دیگه یا ایساللادینا کفارو من دین کم، کفار و بیگانگان دیگه امید ندارن. بتونن در شما نفوظ کنند، امید ندارند، بتونن مش سعادت شما را تغییر دهند که می میبینیم در این انقلابی که به دست امام الله مقامه به وجود آمد یک قدرتی ایران به جهان نشان داد که حتی اونها که خود رو عبد قدرت میدانستند به زانو در آمدند و هر توتعهی که شدند برای شکستن این انقلاب مواجهه با خودشون مواجه با شکست شدند یا مانتا این آیه کریمه یک زیر دارد که این زیر تکنده هند است. می‌فرماد آل جونای سالدیل کفار و من دین فلا فلاطاقش از دشمن دیگه نترسید. با داشتن بلایت دیگه دشمن نمیتونه هیچ غلطی بکنه. با داشتن رهبری لایق کاردان، زاهد متخب. که متاع باشد و مردم طبعیت کنند و پیروی کنند اونچهان که زمان امام پیروی کردند با داشتن چنین رهبری دیگه دشمن هیچیک از توطعهاش معصر نمیشه و نشد به همدلله. هر چه زدند که این انقلاب را آسیب برسونند نتبانستند بلکه به خود ضربه زدند فلا تخشوهم اما زیلش میگوید گوید بخشان. اما مراقب باشید شما خدا ترس باشید شما به وظیفه عمل کنید عوامر خداوند در بین شما مورد عمل قرار بگیرد تقوا داشته باشید فرامین رهبرتون رو امتثال بکنید اگر انتصال نکردید حالا بترسید بخشان این در حقیقت بعد از آیه الیوم اكملت ثلاكم و آیه کنم که الیوم یئس الذین کفروا اینه که اگر نترسیدید از خدا نترسیدید اگر در بین شما تقوا ها نباشد اگر اسیر دنیا باشید اگر اسیر شهوات باشید اگر اسیر مطامع هوای نفس باشید اگر بین آنها به عوض حکومت زوابط روابط ها چه باشد و اگر چنین و چنان اگر تخلف کنید از فرامین که امیر در عهد نامه مالک اشتر بیان فرمود اون وقت بترسید جا دارد بترسید مبادا امریکا نفوظ کند مبادا امریکایی که از در بیرون رنده شده از دریچه بیاید مبادا خدای نچد حکومت دینی از دست شما برود. اون که از دست مردم مسلمان در جرایان اندلوس رفت از دست رفت حکومت اسلامی ساقت شد حکومت اسلامی از دست رفت به باسطه این که مردم و دینشون غالب آمد اهل شهبت شدند دنیا پراز شدند داستان امدلس رو من سفارش می کنم به دقت مراجعه کنید و مطالعه نمایید اینها حشدارهاییست برای ما مردم ایران ما که به همدلله علم قطرت اسلام در جهان هستیم مراقب باشیم که آسیب نبینیم این سخن اصلی قرآن است رمز عظمت قدیر مسئله ولایت فقیه است ولایت امر است ولایت امام معصوم در زمان حضور و بلایت جانشین حضرت مهدی در زمان غیبت است. <تصفيق> هرچه بخواهیم در آستانه قدیر درباره باره قدیر بگوییم در یک کلم خلاصه می شود بنا باشد امر به تقوا به خود و به دیگران بکنیم باید بگویم به افراد مراقب باشید از پیروی رهبر ذرهی منحرف نشوید ذرهی در این جگه اشتباه رخ ندهد خداوند همه ما را موفق بدارد به بلایت امیر وفادار باشیم خدا به ما توفیق دهد دست از زامن پیغمبر و اهل البیت بر نداریم که مظهر این معنا تمسک مخلصانه به رهبر کبیر و گرانقدر است خدایوندا پروردگار ما را در قیامت با تمسک به ولایت سرپرست بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سيدنا محمد المبعوث کاہدیین و, و نفسی به الله باز مجددن در پایان خطبه ای اول شما از ذرا و خودم را به تقوا سفارش می کنم. مراقب باشیم موازب باشیم در محضر خدا ادبی نکنیم اون زمان که مواجه و روبرو با خدا هستیم خدای نکرده مرتکبه گناه بشویم. ما سیباشیم که این بدترین مصیبت است. نمکن تو آباجه که به اون زمان که من با توی خدا روبرو بودم، گناه چردم منو ببخش منو عفو کن ادل آف با نه بسم اسم الله الرحمن الرحیم. ادا و جا آنسول الله بالفاتحه. برای تننا سید خلون فی دین الله افواجا و صبح و حمد ربک و انه کانا توابا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك أخياراتك من خلقك محمد صلى الله عليه وسلم صلى على علي أمير المؤمنين وبعث رسول رب العالمين صلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين صلى على سبط الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة صلي على عيمت المسلمين علي ابن الحسين و محمد ابن علي و ابن محمد و موسى جعفر و علي ابن موسى و محمد ابن علي و علي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف الصالح الهجة القادر اللهم اجل فرج مسح المخرج انشر هنا عزيزا عزيز وافتحه يسي وجعل من بين در خطبه اول در ارتباط با غدیر جمعی فراموش کردم بگویم اینچ عزم میکنم ما باید بفروشیم غدير رو جهانی کنیم دنیای اسلام قدیر رو به خوبی بشناسد این وظیفه مهم ماست این است که خدا بند اداع اون رو از ما می و می‌خواهد. خیلی از مجامع اسلامی هستند که هنوز قدیر رو خوب نشناختند چلمات رسول الله در قدیر به گوش اونها نرسیده و غافلند اصلا غدیر وقتی جهانی شود امت اسلامی متمسك به عربت الوسقا می شود همون عربت الوسقایی بسقا که فرمود لنف سامده ها فمن یک فر و یؤمن بالله و قد سمسکه به عربت الوسقا لنف سامدها. باید امت اسلامی همه و همه متمسته به اربط الوسقا باشند به تغییر قرآن و اربط الوسقا هم اهل بیت علیهم الصلاة والسلامند همون رسول الله مشرر فرمود "انی نیتار کن فیک کتاب الله و اطرتی اهل بیت". در این زمینه باید تشکر کنم از بنیاد الغدیر که به فعالیت های خوبی داشته و کارهای خوبی کرده و باز خواهد کرد اما کافی نیست دولت باید در این زمینه بنیاد رو کمک کند وظیفه مهم این دین ببخشید وظیفه این کشور که بالاخره افتخارش این است که عدل علی که است، باید بزرگترین وزیفهش که انجام بدهد این باشد که این علی رو به دنیا معرفی کنه این قدیر رو معرفی کنه با این فضائلی که امیرالمؤمنین دارد که با اونی که دشمن کوشید تا توانست فضائل رو مخفی کرد و در مقابل برای دیگران فضائلی جعلی کرد اما دنیا را فضائل علی پر کرده است در هر حال این هم تذکری بود که در ابتدای این خطبه دوبم خدمتتون عرض کردم اما در این خطبه چند نکته هست که لازم است عرض کنم یکی در ارتباط با این تحلیف هایی که در این روزهای گذشته شکل گرفت قسم‌هایی که مسئولین محترم خوردند در مقابل قرآن و در حضور مردم و ذات مقدس تربعدگار قسم خوردند این تحلیف هم رئیس جمهور محترم انجام داد هم هیات دولت انجام دادند هم در شوراها این عمل ظاهرا انجام گرفت و هم علاوه بر این تحلیف وعده که وزراء پیشنهادی به نمایندگان دادند و مردم هم شنیدند در واقع وعده به مردم دادند من میخوام در این مورد یک نکته بگویم و اون نکته این است قرآن میفرماد وَمِنْهُمْ الله لا اللَّهُ لَا من آتَانَا مِنْ فَبْلِهِ لَنَصْشَدَّقَنَّا من مِنْ سَادِحِينَ من آيات رو ترجمه میکنم خداون میفرمد بعضی از مردم با خدا پیمان میبندند میگویند خدایا خدا جا عجب به ما مالی دادی از فضلت نصیبی نصیب ماجیب ما حتما به فکر فقراء خواهیم بود صدقه می دهیم لنصدقنن و لنکونن اما حتما در زمره بندگان صالح تو خواهیم بود و به وظیفه مالداری و ثروتمندی عمل خواهیم کرد اما آیه دوم میگوید فلما هم من فضله بخلوا به وقتی خداوند از فضلش چیزی به آنها داد و آنها ثروتمند شدند بخل ورزیدند بود به فقرا بدهند اما ندادند و تولو به هم مقردون پشت کردند به بعدشون فراموش کردند بعدهاشون فراموش کردند عهدها و پیمنهاشون و بالاخره فراموش کردند تحلیفها و قسم خردنهاشون و کردند رو پشت کردند به این وعده که دادند نکت آیه سببون ببینید خوب دقت کنند اونها چه قسم خوردند ببینند چی گرفتاری براشون پیش میاد اجر به وعده و به قسم عمل نکنند فعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون لا اله الا الله می‌فرماد وقتی آنها به بعد عمل نکردند به قسمی که خوردند عمل نکردند خداوند در دلهای آنها نفاق ایجاد می‌کند فاحفظهم نفاقا في صدورهم و این نفاق یعنی منافق بودن تا چه ادامه دارد الى یومی القونه تا روز قیامت در عالم برزخ اینها به عنوان منافق شناخته میشن در قیامت به عنوان منافق شناخته میشن چرا؟ به ما اخلف الله ما بعدوه برای چنین ها وعده هایی که به خدا دادن عمل نچردن و بما و یک ببون و بذ معلوم شد اون چه وعده دادن و قسم خوردن دروغ بود alam ya و anna الله ya'lamu sirrahum اینها نمیدونن اون لحظه ای که پیمان شکنی میکنن عهد شکنی میکنن به قسمشون عمل نمی کنن نمی خداوند هم پنهان رو میدانند، هم آشگار رو میدانند، و هم حرفهای سری که به یک دیگر می زنن می و سرهم بنجواهم و, و ان الله علام و و خداوند به تمام قیبها به طور کامل آگاه است. اینها آیات سوره توبه از آیه پفتاد تا آیه هفتاد و هش من دلسوزانه و مخلصانه و ارادت مندانه به همه این عیزانی که مراسم تحلیف داشتند، قسم خوردن توصیه می کنم بر خودتون رحم کنید اگر به قسم عمل نکنید شما منافق خواهید بود و در قیامت در زمره منافقین محشور خواهید شد که جو مند او کل مناسن به امام هم ببینید یه مراجعه بکنید به تحریف ها ببینید نمایندگانی که قسم خوردن متن قسم نامشون چی هست چی قسم خوردن رئیس جمهور محترم چه قسم خورده چه چیزهایی رو در قسم منظور داشته مثلا این تعبیر چه من قسم می‌خورم در مقابل قرآن خودم رو وقف خدمت کنم وقف مردم کنم بیاد مردم باشم در غم مردم باشم خادم مردم باشم اینا چیزهاییست که قسم خوردن آقایان مراقب باشند. مواظب باشند مبادا خدای نکرده سرنوشتشون به نفاق بکشد مسئله مهم امروز ما مسئله میانمار است خدا حکومت میانمار رو ساقت کند خدا من این جانیان رو نابود کند بدون را قبل از آتش آخرت به دنیا آتش دنیا بسوزاند چه می کنند الله بدن آدم نمی لرزد من نمیدونم چطور این چدماط رو بگم در این جریان اینها کارهایی که میبلند سرهای بچه‌ها رو میبرند سرهای زنها و مردها رو میبرند بچه ها را زنده زنده می سوزانند مردم رو مردم مسلمان رو سوزانند کمچ های بشاد رو مسدود می کنند که به اینها کمکی نرسد رسانه های جهانی هم متاسفانه سانسور می کنند که از این فجایع دنیا منطرق نگردد میگویند پشت پرده تحریک رژیم سهجونیستی است که این رژیم عجب ماده سرطانی است که در بین کشورهای اسلامی به وجود آمده سکوت مرجبار مجامع جهانی مدعی حقوق بشر و سازمان ملل متحد این هم بحتابر است بله یه جمله میگن محکوم میکنیم. با این تمام شد با این جمله تمام شد تمام مسائل تمام شد دیروز سحنه سحنه رو به من بعضی ها نشون دادن در فضای مجازی کودکی حدودش یادم نگاه میشد یک سال و دو ساله بود این کودکش رو برهنه کرده بودن این نانجیب ها و برق متصل میکردن مرتب به بدن این بچه و بالاخره با این اتصال برق او رو کشتن میگذاشتن چنار بوشش اون ناله میزد پریاد میزد به پهلوش به دست بپاش تا بالاخره با برق کشتنش نقر شده بیش از چهار هزار کشته صد و هزار آواره این جنایات داشته خب چه باید کرد به این عزیزان اینها برادران و خواهران مسلمان ما هستند و به ما گفته می شود من سمع منادین من سمع منادی فلم المسلمین و یجبو فلیس بمسلم اینها دارن ناد میزنن میگن دنیا دنیای اسلام به داد ما برسید ببینید با ما چه میکنن؟ ما چه وظیفه داریم؟ مجامع جهانی که امیدی بهشون نیست. عقلا باید کشورهای اسلامی مردمشون همه همه و همه تظاهر کنند راهپیمایی کنند فریاد بزنند. مرژ بر این جانیان بگویند مرژ بر حامیان این جانیان بگویند مرژ بر امریکا و اسرائیل بگویند مرژ بر حکومت جبار از نماز تظاهرات خواهد بود ان شاء الله شرکت خواهید کرد و شاره های کوبندتون در اون راه به ان شاء الله جهان رو می کند شاهدان عینی میگوین ما شاهد بودیم اونهایی که تونستن فرار بکنن میگفتن در یک اتاقی ما خود رو پنهان کرده بودیم و این نامجیب ها می دیدیم تند تند سری بچه ها رو دارن می سر مردم رو دارن می بارن. گفتم دیدیم مردم مردم رو در یک کلبه چوبی جمع کردن خوب که جمع کردن کلبه رو آتش زدن همه رو آتش زدن بله بعضی پیشنهاد ها رو می دن اینا دردی رو دوار نمی کنه که یه پیشنهاد میده حالا چینا دارن فرار میکنن به سوی بنگلادش بنگلادش مرزهاشو به روی فراریان باز کن که متاسفانه مرزهاشو بسته سازمان ملل هم از این پیشنهاد استقبار کرد عجیب سازمان ملل هنر شما همینه این سازمان این که بعد داد به داد مظلومین برسد از حقوق ها دفاع کند با ظالم مقابله کند شما این کار رو میکنید یا شما تشکیل شدید برای حمایت از ظالمین آیت الله مکارم هم پیشنهاد خوبی کردن گفتند تمام بزرای کشورهای اسلامی جمع بشن و برای قضیه فکری بکنن مسئله دیگر چه نمیتونیم فراموش بکنیم شهید حججی است مدتی از شهادتش گذشته اما داغ بر دلها همطور مونده و مردم بیاد یاد شهید حججی ناله میزنند عجیب هست ما در مبارزات حق در بر باطل در مقابل باطل سربریده زیاد داشتیم خیلی ها رو سربریدن خیلی ها رو شکمجه کردن اما عجیب است که این عزیز اینجور نامور شده و نه تنها نامور شده بلکه مورد عشق همه قرار جرته و او به عنوان حجت الهی مطرح است جمایاتی که داعش در مورد این شهید کرده کم نیست من فکر میکنم رمز مطلب که اینطور شهید حجاجی گل کرده و مورد عشق همه قرار گرفته اخلاص او هست ما زیاد در طی قرون جنگ بین حق و باطل داشتیم اما هیچ جنگی مانند چربلا چهره نشون نداد به دلیل اینکه که اون جنگ چه برش اخلاص بود اخلاص به تمام معنا خود عبد عبدالله اهل بیتش اصحابش همه و همه این عزیز اخلاصش خیلی بالا بود از کنم که یه نامه در فضای مجازی خوندم که منتشر شده بود از این شهید بالا مقام قبل از که متن نامه رو بخونم یک آیه براتون مطرح میکنم یا خداوند داستان کربلا رو براش بیان فرمود چون او گفت خدایا این پنج نام مقدس که تو به من یاد دادی چهار نام اول رو که میگویم یک انبساطی و تسلی خاطری برام پیش میاد وقتی میگویم الهی اسالو که به حق محمد و حدیقی و فاطمه والحسن نام این چهار رو که میبرم انبساطی پیدا میکنم اما پنجمی رو که اسمی برم میگم بل حسین بی اختیار اشکم میریزه و ناراحت میشم خدایا علت قضیه چی هست میگه مالی ادا کرد تو عربم منهم هم به اسماه من همومی با نام بردن چهار تو اولی یک قد آرامش پیدا میکنم از غم اما واذا ذكرت حسین تدمه و موینی نمیدونم خدا علت چیه وقتی اسم حسین رو میبرم بی اختیار اشکم جاری میشه و تفور و زفرتم ام بلند میشه خداوند داستان کربلا رو برای ذکر یا بیانش وقتی ذکر شنید عبارت روایت این است که لم یفارق مسجده فلاثت ایام سه شبان روز رفت مسجد نشست و در رو به روی مردم بست و من فیه ناس و بی کسی هم اجازه ملاقات نداد سه شبان روز در مسجد هی عشق میریخت هی ناله میزد هی فریاد میکشید اقبل على بکائی و وكان و کان یرفی به درگاه خدا عرض میکر خدایا اتفجع و خیر جمعی خلقك به بلده خدایا پیغمبرت چه عزیزترین خلقت هست او باید در غم فرزندش ناله بزند الهی اتنزه رو بلباها به رضیه به فنائه یا به خانه پیغمبر را پیدا بکند الهی تلبس و علیم و فاتمه فوق و به المصیبه علی و زهراب لباسی این به تن بکنن بعدن گفت خدایا این نکته رو توجه کنید گفت الهی ارزقنی بلدن تقر عینی آلا لکھیدارو خدایا به من یک فرزند بده در پیری که نور چشم من باشد خیلی هم دوستش بدارم فرزق فرزقنی فتنته تا منو گرفتار او بکن عاشقش بشم شیفتهش بشم دلباختهش بشم فتننی به او به ثم مفجع نی به همچی که خوب منو عاشق او کردی منو داغدار کن در غم او چه من همونطور که پیغمبر ناله میزد در مصیبت حسین منم دلم میخواد در مصیبت فرزندم همینجور ناله بزنم فرزقهو یحیا خدا بش یحیا داد احتجاج تبرسیب صفحه دویست و و نو این دو میدونید برای چی گفتم برای اینکه شنیدم این شهید حجت نامه نوشته و به درگاه خدا عرض کرده در نامه خدا یادلم دلم میخواد مصیبتی که بر حضرت زهرا وارد شده بر من وارد بشه مصیبتی که بر علی وارد شده بر من وارد بشه مصیبتی که بر اول فاز وارد شده بر من وارد بشه دلم میخواد چشمه هدف تیر قرار بگیره اونچنان که چشمه های عباس اینچنین شده و بالاخره نقلم چه کردن این بدن عزیزش همین جور بوده نقل کردن نه سر داره نه دست داره نه پا داره نه عضو سالم داره گویا اصلا قابل شناخت نیست همانطور که زیدن وقتی به امام بدن امام حسین نگاه کرد بدن برادر رو نشرفت گفت انتا اخیب انتا ابن امیم اینو برای این گفتم برادران خواهران، اونها که اسیر دنیا شدید اونهایی که اسیر پول شدید به خود بیایید از این شهید درس بگیرید این شهیدی که بیست و ساده بوده میگه خدا هرچه میباست نزده ببرم بردم دیگه آلا میخوام با تو معامله بکنم و اینشنین خود رو برای شهادت آماده کرد خدایش با سید شهداء و جاران سید شهداء او را و تمام شهدا را مشهور بگرداند جمعه از کنم در مورد امریکا امریکا خیلی پرروه نه تنها از کنم که ظالمه پررو هم هست میگه که باید اماکن نظامی ایران رو ما بازدید کنیم شما غلط میکنید چه کاره هستید چی به شما این اجازه رو میده؟ و این آرزو رو به گور خواهید برد ما هایی که راه های نظارتی در ارتباط با مراکز حسه ای ایران که در برجام تعهد کردیم اونها کاملا روشن است و بازرسان آجانس هم که بازدیدهایی از مراکز حسه ای داشتند سریعا گفتند ایران هیچ تخلفی از رابط آژانس نداشته حالا آمانو آمده میگه که آژانس میتونه چنین نظارتی بکنه او هم اشتباه کرده ما در رابطه با صلاح ها وعده ندادیم که هیچ کشوری بتونه در مورد اطلاع از اونها گامی برداره تبریج میگم به مقامات سوریه و به مردم سوریه آزادسازی شهر دیرزدور را الحمدلله به مردم عراق و مسئولین عراق تبریج میگم آزادی شهرهای موسل و تلعفر را در یمن تعداد مبتلایان به وبا طبق نقل به 2043 نفر رسیده که دارن جون میدن و میمیرن به این علاوه بر اون که میشن و شهید میشن و کشته میشن من نمیدونم این عربستان سعودی راستی احساس مسئولیت نمی کند به آیات و قرآن که در زمینه کشتان مسلمان هاست ایمان ندارد اگر ایمان ندارد بگوید و اگر ایمان دارد چرا پایبند نیست تا چه این همه جنایت تا چه این همه کشتار یه جمله هم در پایان عرایزم میخوام عرض بکنم به مسئولین و اون این که حتما شما مستهزرید در این فضای مجازی هر کی هر حرفی که میخواد بزنه میگه بینامونشان هم میگه یه دفعه میگه فلان مسئول هزاران میلیارد دلار مثلا دزدی کرده فرار کرده دیگری چنین کرده چنان کرده نمیدونم اینها ها ذهن مردم رو خراب میکنن آقای مردم را به نظام بدبین میکنن مردم ساده فکر میکنن که اینها راسته ممکنه راست باشه ممکنه دروغ باشه من توصیه میخوام بکنم به مسئولین کشور که چشمشون را باز کنن به این حرفها ببینن چی در این فضای مجازی چی میگن به کی چه نسبت هایی میدن چون اجب جواب ندید مردم میگن دواد راست دیگه اگر دروغ بود اینا میگفتن دروغه راسته اگر بگن راسته چطور میشه که هزارون میلیارد تومن فلانی خورده برده بریخته در رفته یعنی چی کشوریه من خواهش میکنم از مسئولین تمام این حرفایی که ها میزنن اینها رو اولاً ببینید چی میگن سانیا هم بیایید در تلویزیون آشکارا به مردم بگید اگر دروغ بگید اگر هم راسته که با مصیبت ها بالاخره اگر دروغه اقلن دروغش بگید مردم اینقدر ناراحت نشن بدبین به نظام نشن ممکنه شما بگید شما گوشمون گوشمان به دهکار بین هر چی بود میگن بله هر حرفی رو میزنن اما هر حرفی رو که میزنن ذهنهایی رو خراب میکنن انسانهایی رو نسبت به نظام بدبین میکنن هر حرفی برای اون که مزخرا پیگه گفته بیایید اثبات کنید بگید بابا این دروغ اینطور نیست اینطور نیست اینطور نیست من استدعا میکنم مسعودی نجر این عرض من رو قبول میکنن عملی بفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصماد لم يليل ولم يولد، ولم يكل له كفبا أحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته